به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاطمه افشار این داستان درخت جواهر در سالهای خیلی قدیم در نزدیک دریا در شهر پاهانگ دهکده کوچیکی به نام آیربرو وجود داشت که رودخونه کوچیکی از بین اون عبور میکرد. مردم این دهکده کوچیک افراد پرکار و سخت بودند. اما توی این دهکده مدرسه و بازار و جاده نبود، مغازه و فروشگاه و خیابانی هم توی اون به وجود نهیمده بود. مردم این دهکده صبحهای خیلی زود سوار قایقای کوچیکشون می و به سمت دریا پارو میزدن. تا وقتی که ظهر میشد مشغول ماهیگیری بودند بعد از اون به خشکی می اومدن و توی مزرعه های سرسبزشون مشغول کار میشدن زن ها هم بعد از جمع کردن محصول و پخت غذاشون برای تهیه لباس و پارچه مشغول میشدن مردم این دهکده با اینکه فعالیت زیادی داشتند اما خیلی خوشبخت بودن و روزگار شادی رو می گذرندن. اگه شما امروزه به اون دهکده سفر کنین دیگه کلبه یا خونه کوچیکی رو نمیبینین چون به مرور زمان اون دهکده به یه ویرانه تبدیل شده فقط یه تپه کوچیک بالای دهکده وجود داره که درخت بلندی بالای اون توجه شما رو به خودش جلب میکنه. این درخت بزرگترین و تنومندترین درختیه که ممکنه شما تا حالا دیده باشین این درخت تنومند و سر به فلک کشیده هزاران شاخه و گلای آبی رنگ به رنگ جواهر داره به خاطر همین به درخت جواهر معروف شده شاید با خودتون بپرسین چرا دهکده آیربرو دیگه وجود نداره و اینکه چه کسی این درخت رو پرورش داده این معما توی این داستان پرده برداری میشه روزی روزگاری در سالهای خیلی خیلی قدیم در دهکده آیر پسر کوچیکی زندگی میکرد که اسمش احمد بود و نه سالش بود. احمد توی مزرعه سرسبز و خرمی کار میکرد و آذوقه و هیزم مورد نیاز خانوادش رو تهیه میکرد و به خونه آورد. وقتی هم که مادرش به بیرون از خونه میرفت احمد از خارکوچیکهی خودش راهله مراقبت میکرد. یه روز وقتی احمد مشغول درو بود چیزی بین سبزی ها مثل شیشه درخشید. احمد نزدیک رفت و یه نگاهی به اون کرد. یه دونه مثل لوبیا اما بزرگتر و آبیرنگ مثل یه جواهر کوچیک بود. احمد دستشو دراز کرد و دونه رو برداشت و لمسش کرد خیلی تعجب کرد دونه حرکت میکرد احمد با خودش گفت حتما موجود زنده که حرکت میکنه دوباره اونو لمس کرد و این بار مطمئن شد که دونه داره حرکت میکنه و میخواد از دستش فرار کنه احمد دونه رو به چشمش نزدیک کرد تا بهتر ببینه و بهش گفت آیا تو موجود زنده هستی؟ و در کمال ناباوری شنی؟ بله لطفا منو آزاد کن و اجازه بده که خیز کنم و راحت باشم احمد با خودش فکر کرد شاید جن و پری داخل این دونه اسیر شده و میخواد فرار کنه شاید بهتر باشه که من این دونه رو بشکفم و اونا رو نجات بدم اما خیلی زود از این کار منصرف شد و با خودش گفت این دونه خیلی قشنگه من اونو به خونه میبرم و شاید بعد از چند روز جنوپری از اون بیرون بیان احمد یه دو شبی در حالی که اون دونه آبی رو توی دستش نگه می داشت می خوابید اما هیچ اتفاقی نیفتاد و پری از اون بیرون نیومد چه شب سوم بود که احمد توی خواب و رویا پری زیبایی رو دید که از دونه بیرون اومده و داره به سمت اون قدم بر داره. اون پری یه شنل آبی رنگ به تنش بود و موهای بلندش هم تیه باد پریشون بود و آبی رنگ بود. درست مثل همون دونه آبیرنگ. پری به احمد گفت من مدت ده ساله که تو این دونه اسیر شدم. یکی از پری های بدجنس منو با فریب و نیرنگ تو این دونه گرفتار کرده. و حالا تو باید به من کمک کنی و منو از این زندون آزاد کنی. اگه من نجات پیدا کنم تو رو به جزیره خوشبختی میبرم اونجا هر چیزی که بخوای توی یک لحظه برای تو فراهم میشه دیگه نیاز نیست کار کنی و زحمت بکشی همه چیز برای تو آماده میشه احمد یه نگاهی به پری کرد و با تعجب پرسید خب من باید چه کار کنم چجوری تو رو از اون دونه خارج کنم پری بهش گفت بالای دهکده یه تپه هست باید به اونجا بری و یه چاله بکنی و شنو و خاک و ماسه تمیزی رو پیدا کنی و اونجا رو پر کنی. بعد دونه رو بین اون بذاری و هفت روز اون آبیاری کنی. صبح که احمد از خواب بیدار شد دید که دونه توی دستشه. با تعجب از خودش پرسید آیا واقعا من اون پری آبی پوش رو دیدم؟ یا خیال کردم که اون توی خواب داره با من صحبت میکنه. احمد از خونه بیرون اومد و با خودش گفت به هر حال هرچی که گفته باید انجام بدم تا ببینم چه اتفاقی میافته. احمد احمد هرچی که پری و پوش بهش گفته بود رو انجام داد بالای تپه رفت خاک و شن تمیزی رو تهیه کرد و قسمتی از خاک اون تپه رو کن تا خاک و شن رو داخل اون بریزه و دونه رو به این اون گذاشت. احمد هر روز یه سطل آب رو از رودخونه بر داشت و بالای تپه می‌رفت و دونه رو آب می‌کرد. سه روز اول هیچ اتفاقی نیفتاد. روز چهارم احمد دید که یک گیاه کوچیک از لابلای خواه کشد سر بیرون آورده روز پنجم با ناباوری دید که گیاه خیلی بزرگتر شده. و در صبح روز ششم وقتی که احمد برای آبیاری گیاه بالای تپه می رفت، ساغه گیاه از قد اونم بلندتر شده بود. و اما در روز هفتم احمد وقتی که بالای تپه رفت، با تعجب دید که یه درخت بزرگ و تنومند اونجاست و اون گیاه کوچیک یه درخت بزرگ تبدیل شده خورشید کم کم داشت غروب می کرد و سیاه شب توی آسمون پیدا میشد. احمد برای آخرین بار درخت رو آبیاری میکنه، و به خونه بر میگرده شب وقتی که توی رخت خوابش دراز میکشه به دونه آبی رنگ و پری آبی پوش و درخت تنومند هفت روزه فکر میکنه و خیلی زود خوابش میبره. توی خواب خودشو بالای تپه و کنار درخت میبینه. یه لحظه پری با شنل آبی رنگش از لابلای شاخه ها بیرون میاد و در حالی که داره لبخند میزنه به احمد نزدیک میشه و میگه از اینکه منو از این دونه آزاد کردی ازت ممنونم. من الان دیگه آزاد شدم و همونطور که بهت قول دادم تو رو به جزیره خوشبختی میبرم. اونجا میتونی به خوبی و خوشی زندگی کنی. وقتی که خورشید از آسمون در اومد، کنار رودخونه حرکت کن و به محلی که همیشه از اونجا آب میداری برو. وقتی به اونجا رسیدی، یه قایق کوچیک میبینی سوارش شو بهش بگو منو به جزیره خوشبختی ببر. بعد اون قایق حرکت میکنه و تو رو به جزیره خوشبختی میبره بعد از اینکه پری آبی پوش از احمد خدافظی کرد احمد از خواب بیدار شد آسمون روشن شده بود و احمد از خونه بیرون اومد و کنار رودخونه حرکت کرد احمد به جایی که هر روز برای خانوادش آب برمیداشت رسید قایق کوچیک رو نزدیک اونجا دید و سوارش شد و به قایق گفت منو به جزیره خوشبختی ببر. قایق شروع به حرکت کرد. از ساحل دور شد و توی دریای آبی و پهناور شروع به حرکت کرد. خورشید طلایی از افق بالا می اومد و احمد توی قایق به رویاها و آرزوهاش و جزیره خوشبختی فکر میکرد. توی این دریای بزرگ و پهناور احمد تنها بود و هر طرف رو که نگاه میکرد اثری از خوشگی نمیدید. و قایق همچنان به جلو میرفت. احمد با خودش فکر میکرد جزیره کدوم طرفه؟ آفتاب به وسط آسمون رسیده. احمد با خودش فکر میکرد جزیره کدوم طرفه؟ آفتاب به وسط آسمون رسیده. چرا نمیرسیم؟ چرا؟ این سؤال ها کم کم احمد رو نامید کرده بود که یهو نقطه کچک سیاه رنگی رو بین دریا و آسمون دید. هر چی جلوتر میرفتند نقطه بزرگتر و بزرگتر به نظر می آمد. تا اینکه درخت‌های سرسبز و بزرگش به راحتی دیده شدند و اونا به جزیره رسیدند. قایر کنار ساحل و ایساد و احمد قدم به خشکی گذاشت. درخت‌های سرسبز و سر به فلک کشیده، میوه‌های مختلف و گلای رنگارنگ و نه و جوی ها و آواز پرنده های زیبا این جزیره رو به یه جزیره بهشتی و رویایی تبدیل کرده بود. احمد توی جزیره مشغول گردش شد و هرچی رو که می تعجب تحجب می کرد. پرنده های زیبا با بالاپره رنگ و رنگ روی سر و احمد می شستن و اون با شادی و خوشحالی باور نکردنی اونها رو نوازش میکرد. با اینکه احمد از خوشحالی توی پوست خودش نمیگنجید، ولی از اینکه هیچ کودک و مرد و زنی اونجا وجود نداشت، احساس دلتنگی کرد. زیر سایه درختی نشست و خیلی زود خوابش برد. صبح روز بعد، وقتی که از خواب بیدار شد، احمد با خودش گفت: هرچقدر این جزیره زیبا و دیدنی و مثل بهشت باشه اما بدون آدمای دیگه به هیچ دردی نمیخوره اینجا هیچ کسی نیست که من بتونم باهاش بازی کنم هیچ کسی نیست که بتونم باش حرف بزنم این جزیره بدون آدمای دیگه منو دلتنگ و ناراحت میکنه. من اگه بتونم خانوادم و به اینجا بیارم اون وقت حتما میتونیم کنار همدیگه خوب و خوش زندگی کنیم احمد با این فکر خیلی خوشحال سوار قایق شد و به قایق گفت من به دهکده ببر. اون خودش می گفت حتما باید برای پدر مادرم از وجود این جزیره بگم و اونا رو راضی کنم که بویان اینجا با هم زندگی کنیم. احمد وقتی که به دهکده خودشون رسید با عجله قایق رو همونجا به تخت سنگی بست و به سرعت کنار رودخون دوید و خودش رو به خونه رسوند. بلافاصله فاصله که به خونه رسید شروع کرد از زیبایی ها و دیدنی ها و حاصل خیزی و میوه‌های اونجا با شور و شوق زیاد برای پدر و مادرش تعریف کرد و اونها رو راضی کرد که با اون به اون جزیره برند. احمد به پدر و مادرش گفت که این جزیره با این همه زیباییش هیچ کسی توش زندگی نمیکنه و ما اولین ای هستیم که توی این جزیره زندگی میکنیم احمد خونوادهشو سوار قایق کرد و جلوی چشمهای حیرت زده اونا به قایق گفت ما رو به جزیره خوشبختی ببر احمد و خیلی زود به جزیره رسیدن. احمد کوچیکش رو بغل کرده بود و دست برادر کوچیکش رو گرفته بود و به خشکی قدم گذاشت. وقتی اونجا رسیدن احمد و خانوادهش شروع کردند به ساختن خونه کوچیکی توی جزیره. با کم کم لوازم مورد نیاز زندگیش رو تهیه کردند. ولی هنوز چند روزی از موندنشون توی جزیره نگذشته بود که احمد احساس کرد که پدر و مادر و برادر و خواهرش، دلتنگ و غمگین شدن احمد وقتی که از خانوادهش پرسید که چرا نراحتن پدرش گفت این جزیره خیلی زیبا و دیدنیه ما اینجا خوشحالیم اما پسرم هیچ خانواده دیگهی جز ما اینجا زندگی نمیکنه و ما دوست و رفیقی نداریم تا شادی ها و غمامونو با اونا شریک بشیم صبحها با همدیگه کار میکنیم و شبه هم دوره هم حرف میزنیم. من فکر میکنم اگه دوستای ما که توی آیربرو زندگی میکنن به اینجا بیان ما با هم میتونیم کنار هم خوشبخت و سعادتمند بشیم ساکنان دهکده آیربرو از زن و مرد و کودک همشون افراد زحمتکش و سخت کوشی هستند با پیشنهاد پدر احمد احمد سوار قایق شد و به قایق گفت که منو به دهکده ببر احمد توی مدت کمی افراد و ساکنان دهکده رو توسط قایق جادویی خودش به جزیره خوشبختی آورد و با تلاش و کوشش اونا جزیره به یه شهر بهشتی تبدیل شد. خونه و راه توی جزیره ساخته شد و از گلاو و درختای اونجا با ذوق و سلیقه باغ‌های خرم و شاداب ساختن. و همینطور که اون دهکده خالی می جزیره بزرگ و بزرگتر ساخته میشد دهکده آیورو دیگه از سکنه خالی شده بود و به مرور زمان دیگه چیزی اونجا نبود. به جز یه درخت بزرگ با شاخه های پیچا پیچ و گلای آبی رنگ. درخت جواهر بالای تپه دهکده تنها نشونه ای از بهای زندگی توی اون دهکده بعد از گذشت سالها هنوز هم محکم و پابرجاز و نسیم عطر گلهای آبیرنگش توی تمام دهکده پراکنده میشه.